در انتهای غلابه اصطلاحات که در انتهای صراط مستقیم بلکه یعنی هر جا که هر کاری که نیت الهی داشت در مسیر مستقیم. اِن ربی علی صراط المستقيم غیر صراط مستقيم بقیه شمه کجرا است؟ غیر صراط مستقیم بقیه همه کجرا است؟ هرکس رو خدا هدایت نکرد به راه در گمراهی در گمراهی هم فایده نیست چیزی که را آدم نمیاد که به درد بخوره. لا یست منو و لا یغنی منجود بعض قضاها دید شکم رو پر میکنن اما نیرو نداره، انرژی نداره، توانیم نداره بایدوشون دو کیلو پفک بخورد مثلا این که تأمین نمیکن ادام پروتوین نمازدن برای بدنمون موادی که باید این چند روز سوالت را که میتونه پفک نه ناییست نمازم، نمازم نمیمجده هر چیز این اصیر نباشه، هر هم قشنگ باشه، زبا باشه متناسب با خودش زباییش متناسب با خودش مثلا علم باشه این مطالبه خیلی خوشدل مطالبه که نمیشه نمیشه بحق بحق عدد مطالبه ممیشه ممیشه از عبارات استماحات الفاظ اما در مسیر مستقیم نباشه انسان رو به اون سمت نبره فکر انسان رو دل انسان رو توجه انسان به سمت خدا نداره این ضرارت به نوع که اول اما اگر مطالب انسان رو به سمت او برد این درسلات مستقیم است به درد انسان نخواه خب ما در حوزه درست میکنیم امده درس همون هم فقه و از ده هم داره از ده شرافت هم بین شریف دیگه فقه المفقه شرافت دلی. اما المفقه هم باید در مسیر خاص خودش کرده بعض جا هستند، همین الان علم فکر اما تو کون سال سال قبل دارند زندگی تو هزار سال قبل دارند زندگی میکن. اون زندگی که من در هزار سال قبل مایی سعادت هزار سال بعد نیست، نیازهای هزار سال بعد به تحمیل نمید. اونجا یک جور، یک سبیل خاص بود برای ورود به صلات مستقیم اینجا یک سبیل دیگه لازمه صغول سلام که بعد منتحی میشه به صلات مستقیم در هر زمانی برای هر کسی یک جوج است صغول متفالت مثلا یک کسی اهل اطعم اهل کار بیانگرده میستی یکی سه اهل خدمات اجتماعی یکی سه دستگیری مردم یکی سه هدایت افکار مردم میکنه، یکی سه هدت قروب مردم نکنه این همه صغول سلام هست این صغول سلام منتقیم میشن به صلات مستقیم این نصد قرآن کریم است خب حالا زمان و مکان و اوضاع احوال در این صبح تاثیر کرده صبحی که هزار سال پیش بود دیگه الان شاید به صورت و مستقیم نشه الان متوقع وظیفه ما نباشه یه روزی فقه میخوندند خب فقه میخوندند و کتاب میدشدند و ترس میدادند و تدریف سلطه در بسلطه در بیشتر از این هم دیگه دانش بسیده بود اما این همه هدف فقه نبود. بود اون چیزی چی که از فقه امسان رو ببره به سمت سالات مستقیم ممکن بود اون تدریس رو و تدریس اون موقع بر همون موقع باشد اما برای الان دیگه نمید این زمان در اثر زمان تحولاتی که پیش اومد نشون داد که فرق باید به جای دیگری منتقی بشه غیر از فقط تدریس و تدارس و تدریس. فقه باید به با کجا منطقه بشه؟ به اینجا منطقه بشه امام به همون چه از اسلام حکومه به شعور بعد اون آخر شامون چه بلد احکام مطلوباتون بالعرز فقه حتا فقه نیست، ذاتی نیست مطلوب بالعرزه و امور آلیه به اجلائه ها به بست الادال. بست عدالت هدف از فقه یعنی حکومت تازه خود حکومت هدف قایی نیست برای چی حکومت مثلا امیرالمومنین اولوامین امیر اولوامین بیاد حکومت تشکیل بده برای بست عدالت که به دلمال به عدالت تقسیم کن خیلی قابل امین علی آلوی احلا ولی الله اعظم که خدا در همه حسیه که در محلی اونو بیاره اینجا برای که به المال دقسم کنه درست دقسم کنه این درسته یعنی قرآن بوده با نه بابا حکومتش هم حکومت هم آخرش برای یک چیز دیگه است. و اون انسان سازی. اگر ما قصه بخوریم که چرا علی به حکومت نرسید چهار سال چهار نیم حکومت دادن اونم مشغولش کردن با ستا جنگ بزرگی ویرانگر و در گریه های که کار نرسید نبرای که چرا علی حکومت نکرد؟ فقط برای اینکه چرا با حکومت تست علی باز نشد که انسان سازی کنه که آثار اون انسانسازی امروز به ما رسید؟ در رسیدن به اخلاق، معرفت، انسانیت هی این در در همه چیز روشن باشه دست باشه قصه ما از این نه امروز هم اگر فقهی که در این زحمت میکشیم، بکنیم از این نمی اگر ما رو نرسونه به اون حکومت به اون عدالت و شرایطی که در اون شرایط انسان ساخته با باز هم همون محلومیتان خودمون به دست خودمون طرف درون اعمال کرتی علاوه این که این انسان الهی این امور که بالا احکام مسبوطه در و امور عالیه آلی یعنی آلاتی یعنی ابزاری یعنی اسبابی یعنی این همه اسباب استغلالاً فقه هم به درد نمیخوره اما امور آلیه هست برای که اجرای حکومت بشه اجرای قرآنی باید بشه بس ته عدالت بس عدالت هم اگه شد امور موقع دمیه انسانسوطی فراهم هست گرفتاری های ما کم میشه. این ما که نرویسیم خودمون رو بسازیم به خاطر مشکولیات دنیا میز. گرفتار دنیا و دریگری های دنیا هست اگر بست عظامت بشه درصد بسیار زیادی از اشتغالات کم بشه به خودسازی رو هر میرسیم الان یه نماسی میخوام بخونیم از اول الله اکبر تا آخر سلام کجاها هستیم؟ مشکولیتون کجا در طور روز از صبح تا شب مشغولیاتمون چیه؟ خودمون هستیم؟ صفت خودمون اون خودم. چرا من حسودم، چرا من بخیلم چرا من خودخواه هستم، چرا من ظالم هستم، چرا من همش مشکولتی های ناست؟ نه بارمون. در تون روز، چند ساله این بفکر این چرا میستم همهش گرفتارش دیگه این گرفتاریات در حکومت عد رو در طرف میشه عدام از این مشکولیات نداره وقت به خودسازی به انسانسازی مشغول میشه و اون مسیر مستقیم علال الله بس نگه میلی آقا شمس سال دوگه شمس سال دوگه اما سمت و سوی تشکیل حکومت اسلامی نداره فقش کار بلکه برعکس حکومت اسلامی هست و خودش کار نبرستم اتفاقان هم میره توی مسائلی که هیچ ربطی به حکومت نداره هیچ ربطی به مسائل بود نداره هرچی این مسائل قدیمیتر و بلرنخورتر تر کنه خیلی فاضلتر و آلمتر به نظر میرسد. این کجاش به اسلامی هم کجاش به فق اسلامی هم بوده خب حالا شما اندیشه های امام یا اندشای فرقی آقا رو دلونیم ببینید این جوری همه سنتسوی حکومیت دارن حکومت برای این سنتسویی است هلی غیر از بکاشه؟ وقت طلب کنیم آه آه برو تجارت رو کنیم بر بازار برو کیف کنیم که امروز دلار این بود فردا شد این خطا خریدی ای اینجا از, زرب از زربا زربا بیا جن بکن تا برسی به استثاثاب و شب، شبه عبائی شبه عبائی که دوست ساله بیورد اگه مطابق با هدفشون رو خوب. خب خب حالا میخوام یه مطالب رو امروز این شد از بخونم این مطالب بیش از پنجاه سال پیش شد که میخواد همین مستقی همین تخوینه رو بسم الله الرحمن یک سال دیگر از عمر ما گذشت شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش در این یک سال تحصیلی شما به حدود تحصیلات و اندوخته های علمی خود واقفید میدانید چقدر تحصیل کرده و تا چه اندازه پایه های علمی خود را بالا بردید لاکن راجب تهذیب اخلاق تحصیل آداب شرعیه معارف علامیه و تذکیه نفس چی کردید و چقدر قدم مثبتی برداشتید هیچ به فکر تهذیب به اصلاح خود بودید و در زمین زمینه برنامهای داشتید متاسفانه باید عرض کنم کار چشمگیری نکردید و در جهت اصلاح و تهذیب خود قدم بلندی بر نداشتید های علمیه همزمان با فرا،, فرا گرفتن مسائل علمی به تعلیم و تعلم مسائل اخلاقی و علوم معنوی نیازمند است راهنمای اخلاق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم برنامه برنامههای اخلاقی و اصلاحی کلاس تربیت و تعذیب آموختن معارف الهیه که مقصد اصلی به است انبیا علیهم السلام باشد باید در حوزه ها رایج و رسمی باشد رایج و رسمی متاسفانه در مراکز علمی به این گونه مسائل لازم و ضروری کمتر توجه می شود علم معنوی و روحانی رو به کاهش میرود و بیم آن است به های علمیه در آتیه ند زعوان کلامای اخلاق مربیان محذب و آراسته و مردان الهی تربیت کنند و بحث و تحقیق در مسائل مقدماتی مجالی برای پرداختن به مسائل اصلی و اساسی که مورد انحایت قرآن کریم و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صلی محمد محمد و سایر انبیا و اولیا علیهم السلام است واقع نگذارند خوب است های ازام و مدرسین عالی مقام که مورد توجه جامعه علمی میباشند در خلال درس و بحث به تربیت، تنزیب و تهذیب افراد همت گوانند و به مسائل معنوی و اخلاقی بیشتر بپردازند محصرین ها نیز لازم است در کسب ملکات فاضله و تهذیب نفس کوشش کرده به وظائف مهم و مسئولیت های خطیری که دوش آنان است اهمیت دهند شما که امروز در این ها تحصیل می کنید و میخواهید فردا رهبری و هدایت جامعه را به عهده بگیرید خیال نکنید تنها وظیفه شما یاد گرفتن مشکی اصطناحات می باشد و زیفه دیگری نیز دارید شما باید در این حوضه ها خود را چنان بسازید و تربیت کنید که وقتی به یک شهر یا ده رفتید بتوانید اهالی آنجا را هدایت کنید و محذب نمایید از شما توقع است که وقتی از مرکز فقه رفتید خود محذب و ساخته شده باشید تا به توانید مردم را بسازید و ترد آداب و دستورات اخلاقی اسلام آنها را تربیت کنید اما اگر خدای نخواسته در مرکز علم خود را اصلاح نکردید معنویات یاد ننمودید و هر جا که بروید مردم را منحرف ساخته به اسلام و روحانیت بدبین میخواهید شما وزیبه سنگینی دارید اگر در روزه ها به وضاحت خود عمل نکنید و در صدد تحضیل خود نباشید و فقط فرا گرفتن چند اصلاح بوده مسائل اصولی و فخی را درست کنید در آتیه خدایی نخواسته برای اسلام و جامعه اسلامی مضر خواهید کن. ممکن است علی عز وجل موجب انحراف و گمراهی مردم شوید اگر به سبب اعمال کردار و رفتار ناروای شما یک نفر یک نفر گمراه شده از اسلام برگردد این آیات که امروز بوس و ظرفیت‌های ما هم برای هدایت کردن زیاد هم برای حرف کردن کافیه <متصفيق> امروز که کسی یه حرف می‌تونه، یه گوهانی حرف که این حرف مورد پسند رسانه‌های بیگانه باشه امروز رسانه‌های زبانیت، دلشون خوشی که صداشون از منوتور رخش می‌شه رسانه‌ی سواعش حالا ببینید این حرفا نموان پنجه سال پیش. دار. اگر به سبب اعمال رکیدار دفتار نانوه شما یک نفر گمراه شده از اسلام برگردن مرتکب اعظم کباهر میباشید و مشکل از توبه شما قبول کرده چنانکه اگر به دست شما یک نفر هدایت یابد به حسب روایت بهتر است از آنچه آفتاب برآن میتاود مسئولیت شما خیلی سنگین است وظایف شما غیر از وظایف عامه مردم میباشد چه بسا اموری که برای امه مردم مباه است برای شما جایز نیست و ممکن است حرام باشد مردم ارتکاب بسیاری از امور مباهه را از شما انتظار ندارند چه و اعمال پست نامشروع که اگر خدای نخواسته از شما سر بزند مردم را نسبت به اسلام و جامعه روحانیت بدبین می زند. درد اینجاست اگر مردم از شما عملی که برخلاف خلاف انتظار از مشاهده کنند از دین منحرف شوند، من. از روحانیت برمی گدن. نه از فرد ای کاش از فرد برمیگشتند و به یک فرد بدبین می شدن. ولی اگر از یک روحانی عملی ناشایست و برخلاف نزاکت ببینند تجذیب تحلیل نمی کنند همچنان که در میان کسبه افراد نادرست و منحرف وجود دارد و در میان اداریها اشخاص فاسد و زشتکار دیده می شود ممکن است در میان روحانیون نیز یک نفر یا چند نفر ناسالح و منحرف باشد همچنه تحلیلی مردم ندارند لذا اگر بقالی خلاف کند میگوید می گوید فلان بقال خلافگار است. اگر یک عطار عمل زشتی مرتکب گردد گفته می شود فلان عطار زشتگار است. لکن اگر آخوندی عمل ای انجام دهد نمی فلان آخوند منحرف است. گفته می شود آخوندها بدند. وظایف اهل خیلی سنگین است، مسئولیت علما بیش از سایر مردم میباشد. اگر به اصول کافی کتاب و وسایل به ابواب مربوط به وظایف علما مراجعه کنید، میبینید تکالیف سنگین و مسئولیت‌های خطیری برای اهل علم شده است. در روایت است که وقتی جان به حلقوم میرسد برای عالم دیگر جای توبه نیست. و در آن حال توبه وی پذیرفته نمی شود زیرا خداوند از کسانی تا آخرین دقایق زندگی توبه می میپذیرد که جاهل باشند. رو همون اینجا هست دیگه حالا. فکر نکنم برس. و در روات دیگر آمده است که هفتاد گناه از جاهل آممردهده می شود پیش از آن که یک گناه از عالم مورد آمرزش قرار گیرد زیرا گناه عالم برای اسلام و جامعه اسلامی خیلی ضرر دار عوام و جاهل اگر مرسیتی مرتکب شود فقط خود را بدبخت کرده بر خویشتن ضرر وارد ساخته است لیکن اگر آلمی منحرف شود و به عمل زشتی دست بزند عالمی را منحرف کرده بر اسلام و علمای اسلام زیان وارد ساخته است این اینکه در روایت آمده که اهل جهنم از بوی تعفن عالمی که به علم خود عمل نکرده متعذی میشوند برای همین است که در این دنیا بین عالم و جاهل در نفع به اسلام و جامعه اسلامی فرق بسیار وجود دارد اگر عالمی منحرف شد ممکن است امتی را منحرف ساخته به عفونت بکشد و اگر عالمی محذب باشد اخلاق و آداب اسلامی را دایت نمود جامعه را محذب به دایت میکنند در بعضی از شهرستانهای کتابستانها به آنجا میرفتند میدیدم احالیان بسیار معدد و آداب شهر بودند نکتش این بود که عالم ساده و پریزکاری داشتند اگر عالم ورع و درستکاری در یک جامعه یا شهر و آستان زندگی کند همان وجود او باعث تحذیر به هدایت مردم آن سامان می گردد اگر چه لفظاً تبلیه به ارشاد نکنیم ما اشخاصی را دیدیم که وجود آنان مایه و ابرد بوده صرف دیدن به نگاه به آنان باعث تنبه می شود. هم اکنون در تهران که فر جمعه اطلاع دارند محلات آن با هم فرق دارد در محلهی که عالم منظه و محذبی زیست میکند مردمان صالح با ایمانی دارد در محله دیگر که یک نفر منحرف فاسد معمم شده، ایمان جماعت گردیده دکان درست کرده است میبینی تایفهی را فرید داده آلوده به منحرف ساخته است و همین آلودگی است که از بوی تعفن آن اهل جهنم عذیت میشوند این تعفن است که عالم سوء عالم سوء عالم بیعمل، عالم منحرف در همین دنیا به بار آورده است و روی آن در جهان دیگر شامه اهل جهنم را می آذارد. نه اینکه در آنجا چیز دو اضافه شده باشد آنچه در عالم آخرت واقع می شود چیزی است که در این دنیا تهیه کردیده است به ما چیزی خارج از عملمان ما دهید وقتی بنا شد عالمی مفصد جو و خبیث باشد جامعهای را به عفونت میکشد منتها در این دنیا بوی تعون آن را ها احساس نمیکند لیکن در عالم آخرت بوی تعون آن درک می گردد ولی یک نفر عوام نمیتواند چنین فساد و آرودگی در جامعه اسلامی به آورد. برد عوام هیچ به خود اجازه نمیدهد که دعایی امامت و مهدویت داشته باشد ادعای نبوت و علوهیت کند این عالم فاسد است که دنیایی را به فساد میکشاند اضافه فسد العالم فسد العالم آنان که سازی کرده باعث گمراهی و انحراف جمعیت شدند شدهاند بیشترشان اهل علم بودند بعضی از آنان در مراکز علم تحصیل کرده و ریازتها کشیدند الان وقتی یکی از بین خود ما پیدا میشه اینطوری همه مین پس چطوری؟ این همه درست مده این همه چندین سال و اصول و چی و چی اینه که فخورت کافی نیست تعجبان نده گفت چه دوزدی با چه راقایت گذیده تر برد کنه. اون که چیزی نخونده بلد نیست دستش خالی از دستش مونوشه اما این که یعنی خوب بلد مردم رو فرق بده رئیس یکی از فرد و باطله در امین حفظه های ما تحصیل کرده است. لیکن چون تحصیلاتش با تذکیه و تزکیه نبوده در راه خدا قدم بر نمی داشته خواص را از خود دور نساخته بود، آن همه رسوایی صیغ آورد است. اگر انسان خواص را از نهادش بیرون نکند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید، نه تنها فایدهی بران مترتب نمی شود بلکه ضررها دارد. ال وقتی در این مرکز خبیث وارد شد، شاخ و برگ خبیص که آورده شجره خبیصه می هرچه این مفاهیم در قلب سیاه و غیر محذب گردد هجاب زیادتر می شود پس معلوم می شود که مقدم بودن تحصیل بر تعلیم و تعلوم از چه واقعی کشید. به از ظرفی رو آروده بذاری در برابر علم در نفسی که مهذب نشده علم نیست. العلم هجاب ظلمانی است ال علم او بر لذا شر عالم فاسد برای اسلام از همه شرور خطرناک‌تر و بیشتر است ال نور است ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و دا سیاهی را تر می می‌سازد علم که انسان را به خدا نزدیک می کند در نفس دنیا طلب باعث دوری بیشتر از درگاه زدجران می در جایی فهمت که این علم اعرفانی که آدم از خدا علم توحید آدم از علم توحید هم نموان اگر برای غیر خدا باشد از وجوب ظلمانی است چون اشتغال به معصب الله است اگر کسی قرآن کریم را با چهارده قرائت لماسب الله حفظ باشد و بخواند جز هجاب و دوری از حق چیزی آیده او اگر شما درس بخوانید زحمت بکشید ممکن است آلم شدید ولی باید بدانید که میان عالم و محذب خیلی فاصله است مرحوم شیخ استاد ما الله تعالی علیه میفرمود اینکه میگویند ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صحیح نیست باید گفت ملا شدن چه مشکل آدم شدن مهال است کسب فضائل و مکارم انسانی و موازین آدمیت از تکالیف بسیار مشکل و بزرگی است که ورزش شماست گمان نکنید اکنون که مشغول تحصیل علوم شرعیه میباشید و فقه که اشرف علوم هست می آموزید دیگر راحتی و به وظائف و تکالیف خود عمل کردید اگر اخلاص و قصد غربت نباشد این علوم هیچ فایده ای ندارد فقی با درجه یک اینطوری نسبت به تقصیبت کنند؟ اگر تحصیلات شما علیه برای خدا نباشد و برای هواهای نفسانیه کسب مقام مسند انوان و شخصیت در این راه قدم گذاشته باشید برای خود وزروبان اندوخته اید این اصطلاحات هرچه زیادتر شود اگر با تهذیب و تقوا همراه نباشد به ضرر دنیا و آخرت جامعه مسلمین تمام می شود تنها دانستن این اصطلاحات اثری ندارد علم توحید هم اگر با صفای نفس و هم نباشد وال خواهد بود بسا افرادی که عالم به علم توحید بودند و توایفی را منحرف کردند چه بسا افرادی که همین اطلاعات شما را به نهو بهتری دارا بودند لیکن چون انحراف داشتند و اصلاح نشده بودند وقتی وارد جامعه گردیدند بسیاری را گمراه و منحرف این اصلاحات خشک اگر بدون تررا و تهذیب باشد هرچه بیشتر در ذهن انباشته گردد کبر و نخوت در دایره نفس بیشتر می آورد و عالم تیر وقتی که بعد نخبت به اوچیره شده نمی تواند خود و جامعه را اصلاح نماید و جز زیان برای اسلام و مسلمین نتیجه به بار نمی آورد. و پس از سالها تحصیل علوم و صرف وجوه شرعی برخورداری از حقوق و مذایع اسلامی صد راه پیشرفت اسلام و مسلمین رو و و ملتها را گمراه و منحرف می سازند. و سمره درسها و بحثها و بودن در حوزه ها این می شود که نگذارد اسلام معرفی کرده حقیقت قرآن به دنیا عرضه شده بلکه وجود او ممکن است مانع معرفت جامعه نسبت به اسلام و روحانیت کرده نفت برست وقتی این نقض و یعنی آدم همه سرمایه ها شده همه سرمایه ها شد، بلی به غرض صرف میکنه وقتی نقض و شد یعنی همه سرمایه ها رو آدم از غلص داریم و چی میشه؟ اِنَّ الْخَاسِرِينَ خسرو، خَسِرُ من نمیگویم درس نخانید، تحصیل نکنید، باید توجه داشته باشید، اگر بخواهید عضو مفید و محصری برای اسلام به جامعه باشید ملتی را رهبری کرده به اسلام متوجه احزازی از اساس اسلام دفاع کنید لازم است خواهی اتقاحت را تحکیم کرده صاحب نظر باشید اگر خدای نخواست درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید نمی توانید از حقوق شرعی محصرین علوم اسلامی استفاده کنید البته تحصیل لازم است منتها همانطور که در مسائل فقهی و اصولی زحمت میکشید در راه اصلاح خود نیز کوشش کنید هر قدمی که برای تحصیل علم برمی دارید قدمی هم برای کوبیدن خواص نفسانی تقویت قوای روحانی کسب و کار اخلاق تحصیل معنویات و تقوا برداشت خوب اینا یه وظیفه قلبی یعنی اینا به ما میذاره یه وظیفه جمعی به دوش حوزه علمیه میذاره درس‌های اخلاقی معلبی معرفتی چقدر می شده در موضوع درس دولت یعنی درس همونطور که داخل انتقالات همونطور امتحانات همینطور ارزشیابی که بشه کردن همینطور رشته بندی همینطور یک رشته بحث فرعی حالا یه درس اخلاق بریم اینو که آموزش می‌فرما نت تحصیل این علوم در واقع مقدمه تحذیب نفس ما مقدمات رو گرفتیم نتیجه را به حالتیم تحصیل این علوم در واقع مقدمه تهذیب نفس به تحصیل فضایل، آداد و معارف الاهیه می باشد تا پایان هم در مقدمه نمانی که نتیجه را نماثد شما به منظور هدفی عالی و مقدس که عبارت از خداشناسی به تحذیب نفس باشد این علوم را فرا میگیرید و باید در به دست آوردن تمره و نتیجه کار خود باشید برای رسیدن به مقصود اصلی و اساسی خود جدیت کنید چند سال پیش آقا در همین شهر قوم خطاب به موزه فرمود یا قدری از الفان نظری کم کنید به الفان عملی حالای نظریش کم که نبود بهم. اما اگه بود چه کردند؟ چه کردن؟ شما وقتی وارد حوزه میشوید پیش از هر کار باید در صدد اصلاح خود باشید و مادامی که در حوزه به سر میبرید ضمن تحصیل باید نفس خود را تحضیل کنید تا آنگاه که از حوزه بیرون رفتید، در شهر یا محلی رهبری منتی را بنابطه گرفتید مردم از اعمال و کردار شما از فضایل اخلاقی شما استفاده کنند پند گیرند، اصلاح شوند بکوشید پیش از آنکه وارد جامعه گردید خود را اصلاح کنید معذب سازد اگر اکنون که فارغالبال میباشید در مقام اصلاح و تهذیب نفس برنیایید آن روز که اجتماع به شما روی آورد دیگر نمیتوانید خود را اصلاح کنید خیلی از چیزهاست که انسان را بیچاره کرده از تهذیب و تحصیل باز میدارد یکی از آنها برای بعضی همین ریش و امامه است وقتی امامه کسی بزرگ، کمی بزرگ شد و ریش بلند گردید اگر مهذب نباشد از تحصیل باز میماند مقید میگردد مشکلشت بتواند نفس امالی را زیر پا گذارد و درس کسی حاضر شود من من, من باید ذهب من میشنم با چون همزمان با بزرگ شدن اماما و من حالا بزرگ او من بزرگ دیدم شیخ توسی علیه الرحمه در سن پنجاه و دو سالگی درس میرفته است در صورتی که در سن بین بیست تا 30 بعضی از این کتاب نوشته است کتاب تهذیب را گویا در همین سن و سال برشتی تردیل و در پنجه و سالگی در حوزه درس مرحوم سید مرتضا علی الرحمه حاضر می شده که به آن مقام رسیده. خدا نکنند پیش از کسب ملکات فاضله و تقوییت قوای روحانی ریش انسان کمی سفید در امامه بزرگ کردن که از استفاده های علمی و معنوی و از تمام برکات باز بماند. تا ریش سفید نشده کاری کنید تا مورد توجه مردم قرار نگرفته اید فکری به حال خود نمایید خدا نکند انسان پیش از که خود را بسازد جامعه به او و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را میبازد خود را گم میکند قبل از آنکه انان اختیار از کف شما روبوده شود خود را بسازید اصلاح کنید به اخلاق حسنه راسته شوید و, راست شدید، و اخلاقی را از خود دور کنید در درس بحث اخلاص داشته باشید تا شما رو به خدا نزدیک سازد <تصفيق> اگر در کارها نیت خالص نباشد انسان را از درگاه ربوبی دور می کند طوری نباشد که پس از هفتاد سال وقتی نامه عمل شما را باز کنند ببینند اله هفتاد سال از خدای از عزباجر دور شدید. قضیه آن سنگ را که به جهنم سرازی شد پس از هفتاد سال صدای آن از قعر جهنم به گوش رسید به حسب نقلی حضرت رسول صلی ل عوسلم اللهم صل لی محمد ول محمدوفرمود پیرمرد هفتاد سالهای بود که مرد و در این مدت هفتاد سال رو به جهنم میرد مواظب باشید مبادا پنجاه سال بیشتر یا کمتر در روزها با کفت یمین و عرمه جبین جهنم کس نروید باید به فکر باشید در زمینه تهذیب و تزکیه نفس به اصلاح اخلاق برنامه تنظیم کنید برنامه تنظیم کنید استاد اخلاق برای خود معین نمایید جلسه و از خطابه پند و نصیحت تشکیل دهید خود رو نمیتوان محضر شد اگر حوضه ها همینطور از داشتن مربی اخلاق و جلسات پند و اندرس خالی باشد محکوم به فنا خواهد به فنا خواهد. چطور شد علم فقه و اصول به دارد؟ درsubprocess میخواهد برای هر علم و سنتی در دنیا استاد و مدرس لازم است کسی خودرو و خود در رشته متخصص نمیگردد فقیه عالم نمی شود لیکن علوم معنوی و اخلاقی که هدف رسالت انبیا و از لطیف ترین و دقیق ترین علوم است به تعلیم و تعلم نیازی ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل میگردد. کرارم شنیده‌ام سید جمیل معلم اخلاق و معنویات استاد تخصوص مرحوم شیخ انصاری بود. با علی مرحوم سید ششتری در درس فقه شیخ انصاری حاضر و شیخ انصاری بعد از درس میرفت منزل سید ششتری و با در درس اخلاق بین ما این شده انبیان خدا برای این نبوست شدند که آدم تربیت کنند، امسان بسازند، بشر را از زشتیها ها, ها، فسادها بر از اخلاقی دور سازن و با فضایل و آداب حسنه آشنا کنند. با از دل اوتن ممن اخلاق که علمی که خداوند متعال نسبت به آن آنقدر احتمال داشته که انبیاء را محبوظ فرموده است، اکنون در روضاهای ما رواجی ندارد البته این فرمایشاتیشون اون درانک فرموده بازم یه چیزایی بوده بازم چیز ما الان نیست اکنون در روضاهای ما رواجی ندارد و کسی به طور شایسته به آن اهمیت نمیدهد و بر اثر کمبود علوم معنوی و معارف در ها کار به آنجا رسیده که مسائل مادی و دنیوی در روحانیت رخنه کرده و بسیاری را از معنویت و روحانیت دور داشته است که اصلا نمیدانند روحانیت یعنی چه یک نفر روحانی چه وظیفهای دارد چه برنامهای باید داشته باشد بعضیها فقط در صددند چند کلمه یاد بگیرن ببروند در محل خود یا جای دیگر دستگاه و جاه و به چنگ آورند و با, با دیگران دست و پنجه نم کنند مانند آن که می بگذار شهر رو را بخونم میدانم با که چی کنن. حالا اسم شهر رومه آورد شنیدید گفتن که مرموم آقای قاضی به کردم که در سر. اما آسه در یکل قاضی به درست تخت شرح شروع رو من از استاد رو موشیدم اما در شروع کرد شروع کردن نکرده در زیر گریه در اون درست کرد که آخر درست تخت تدیر شد او عذابت با هدف بارده قضی از مقدمات اینا خیلی قرار کرده بوده که حالا شهرنامه درس در میشه حالا اینم میگه بگذار شهرنامه را بخونم میدانم با خودا طوری نباشد که از اول نظر به هدف شما از تحصیل گرفتن فلان مسند حالا بگو مدرک و به دستاوادن فلان مقام باشد و بخواهید رئیس فلان شهر یا آقای فلان ده کردید ممکن است به این خواستهای نفسانی و آرزوهای شیطانی برسید ولی برای خود به جامعه اسلامی جز زیان و بدبختی چیزی کس نکردی معاویه هم مدت مدیدی رئیس بود ولی برای خود جز دعنون فرد و عذاب آخرت دحیا و نتیجه نگرد لازم است خود را تحذیب کنید که وقتی رئیس جامعه یا طایفی شدید آنها را نیز تحذیب نمون برای اسلام و ساختن جامعه قدم بردارید. عدف شما خدمت به اسلام و مسلمین باشد. اگر برای خدا قدم بردارید. خداوند متعال مقلب القلوب است. دلها را به شما متوجه میسازد ان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات الصَّالِحَا لهم لَحْمُونَ رَحْمَانُوا وَدَّا نه با توجه به این که خدای کار شما در راه خدا زحمت بکشید فداکاری کنید خداوند شما را بیعجب نمیگذارد اگر در این دنیا نشد در آخرت پاداش خواهد داد اگر جزا و پاداش شما را در این عالم نداد چه بهتر دنیا چیزی نیست این هیاهوها و شخصیتها چند روز دیگر به پایان میرسد و مانند خوابی از جلوی چشم انسان میگذرد لکن اجر اخرابی لایتناها و تمام نشدنی خواهد فهمید. خود مطلب اونها جواب این هست ولی شما دیگه آخر نفس هستی بیشتر از این اجازه‌م ندارم. اصل مطلب همین پیش از 50 تا سال پیش این اون فامله اینو براش زمینه و خود دل خورده. کسانی در امین حووزه ها باشه مخالفت با کردن هم با اخلاق مخالفت کردن، هم با فلسفه مخالفت کردن، هم با ارفان مخالفت کردن اون خونه دل خوردن، اما با خونه دل آن اخلاس کارو به جلسید که سرمنه درس فقه در جامعه معلوم بشود حکومت اسلامی حالا نمیگم که حکومت همه فقهه، اما برمبنای فقهه و بر دنبال این است که این فقه دنبالشم هم امروز امروز چون به این چیزا توجه داشتندش به شامل کردن کارشون گرفت کارشون گرفت نتیجه داد و دنبال اون حالت قایی هم الان میبین آقا با اینکه این اوقت گرفتار مسئل سیاسی است اینقدر اوقت گرفتاره اما هیچ اقت اخلاقی مسئل نسلسلسلی مسائل معنوی را از دور نمیزنید تو همین سمت و اشتبالات که هست گاهی صحبتهای معندی به فهمی که بکنه برای همه در و سالنده است بخاطر اینکه اخلاص هست اخلاص توجه به هدف. است احساس کردم که این مطاب در پایان این حفظه و این موقعیت از جلس شما و دوره شما شاید بهتر از این باشه که من دفعه خودم یا حرفایی نگم و برم. امیدوارم این شایلله مطالبی که از سر نفس نفیس امام علیه السلام علیه الرحمن از بانور ده تعالی علیه بلند شد و در این مکتوبات ما این شایل حرف کردیم در نفس رحمه امام. تأثیم و بذاره بل ساختن خودمون برای الانجلن خودمون انشاءاله اقدام جدی بکنیم شب جمعه است این چند تدعا بکنیم انشاءاله که خودایی هواکنتا برحمت و بطف خودش اجابت نفرمائیم اللهم صل علی محمد و عالی محمد که مولای محرزت است، از, از تمین بلایه هست بفرمید. آمد. یعنی که مبارکش نزدیک بفرمید. آمد. ما از یاران و خاصان حرزتش ترار را بده. آه. اسلام و مسلمانان ها نصرت انایت بفرمید. آمد. کفار مشرکی منافقه امریکایی اسرائیل آدمکش، گروه های تکفیری منحرفین در ردگرد به قدرت و قوت و قهر و قلبه خودت منکوب بفرمید. امام اومد شهدا سر صفحه امزبیت می تنعهیم بفرد. رحمرمون سلامتی، توب عمف، اززد، شادامی، نشاز، لفوت کلمه روزکسون رحمت بفرد. هر از ما را عامل به وظایف شرعی اخلاقی و معدلی قرار بده. هر از برای قلب ما را از اون تیرگی که حرف حق صفانا اخلاقی کلام معنوی دار در نفوذ نکند نفس بفرمایید. درس سرا بیچاره ها در دروندام محلم مستضعفین مریض ها مریضدارا عزدارا خانواده های شادان خانواده جنگرزان خانواده مریضدارم خانواده بازماندگان خدای رازندگان هر از در هر جا هستن توفیق عنایت فرما. اسباب تحصیل، اسباب تحزیل، اسباب اتضافت، اصباب اشتغال، اصباب سعادت برای جوانان نامکت فراهم بفرمی کنید برای این کنان ها نمار بلخشوگی شب جمعه است الانی لیسن ام سفاتی که انت امار بستعال بتم نهل اتی اول مالا ما به محصف به توبه و توبه ما بپذیر امید <تصفح> اونا ها یک سره ببخش و ما رو بیاموز پدران و مادران ما تا آدم و همه رو ببخشی بیاموز فرزندانون تا قیامت شیعان نا و عدین زهرا قرار بده امیدگارا خواسته های خیلی فکنیات خیلی که در گرم و همه دوستان ما هست امیدگارا اجابیت بفرما امیدگارا some of them